اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الله جل جلاله تعالی دائم تعالی دائم مجتمعین آگاه و شاد جمعی مشتربین. و رحمنا به ارحم که یا رحم الراحمی از مقدار متعرض کلمات اصحاب در بحث قیام امارات و اصول مقام قرد شدیم و متعرض شدیم مطالبی که فرمودن. اصلا در این تحضیب و اصول یه مقداری به اصطلاح تون شدن که این مطالبی که بفته شده از موازین مثل اوغلایی خارجی دیروز عبارت ایشان رو خوندیم یه مقدار عبارت ایشان رو در بحث قیام امارات مقام قد بله بعد ایشون فرمودن در صفحه ده جلد دو و مندالکی و علم ان قیام مقام القد و اقسامی یعنی قطع طریقی و موضوعی ایشان قطع موضوعی رو چند قسم کردن بیش از اون چهار قسم محلوف ایشون چهارتان بیشتر کردن من خیلی متعرض نشدم چون میبینم این مواحث اگه مراجعه بشه فهمش آسانه و خیلی درست به نظر نمیرسه خیلی من حال مناغش یرد علی اولم و ثانی هم نداریم این تو این مباحث اینجوری وقت به تلفو ایشون میفرموند که نقیامل امارات مقام قد مما لا معنا لهو عمل قطع و طریقی فه این نعمل الاغلاب طرق متداوله حال عدم العلم البته ایشان این مطلب رو مستقلا توضیح ندادن ما مستقلا یه روز یک بحث رو اصلا رو همین قرار دادیم که آیا درباب طرق متداوله و تعبیر ایشان درباب امارات اخذ شده عدم علم یا نه حال عدم العلم لیسم ما به قیام ها مقامل علم این از باب قیام نیست بل این ظاهر عبارت حال عدم العلم مبنای کسانی است مثل آقای خویی که میگن اخص شده یا لبن و لفظا در وضعی موام اما من منباب قیام ها مقامل علم این ظاهر مبنای مقابله حالا چطور جمع شد من نمیفهم بل منباب انها اهدت طرق المنصره غالباً الات واقع مندون التفات الات تنزیل و قیام مقامهم این نکته که ایشان اعتراض دارن که اصلا دعینا تنزیلی نیست این هم آمدن گفتن قایه مقامش میشه پس اگر دعیل آمد که بیان حجته این تنزیل نیست معمی بیانه این نیست که انده عدم العلم این قایه مقام علم مثلا یا اگر سری و اقلائی بود برای اینکه خبر واحد سقه هست خبر سقه این معناش این باشه که خبر واحد قایه مقام علم میشه تنزیل مقام علم میشه نه القطع طریق اقلی مقدمان علا طرق اقلائیه یک طریق عقلی گرفتن که بر بقیه طرق اقلائیه مقدمه حالا عقلی بودنشم هم ما ارز کردیم این چون این مسائل حالا خودیشون اشکال دارن اما انصافا در خود این کلمات هم تنقیه نشده ما از کردیم سر ورود در این مسئله اینه که آیا حجیت رو ما اقلی میدونیم یا اقلائی میدونیم اصلا حجیت خود حجیه متعرضشون دیگه تکرار نمیخویم بکنم. ولی اغلا اینمای عملونه بها انده فقد قد. این جاییشون که شون در وقت نبودن قد. فقد. مثل همون عدم العلم که از آیخوی نروکنیم. ودالک لایستلزم کون عمل حمم با به قیام ها مقام ها خوب. وقتی فقد العلم باشه خوب شوند اینطوری که. من دوشون جایی که قد باشه اماره باشه یا و حضور اون خب که مقدمه به خاطر چیزی که اون تازه حالا در جایی که مقدمه خب نه اندفقدل قد خب در رو خب نمیگه خب قیام مقام هم. خب بحث اینه که این میشه قائم مقام یا نه ایشون میگه نه قائم مقام نیست. خب وقتی فقد قطر باشه که مقام میشه یعنی شون میگه قیام معنا نداره مثلا چیه؟ فقد قطر عمل به اماره میکنی اما از باب یکون مقامه ها نیست پس از چه بابیه؟ وداره که لایستلزم کن عمل هم من باب قیام ها مقامه خب اگه قطر نباشه از باب از اینجا حتی, حتی یکون تریق منحسن بالقط اندهو و یکون از عمل و غیرهی به انایت تنزیل قیام مقامه خب اینا خودش هم تاتصادفن حجیت ذاتی می گرفتن کسایی که که با با حجیت ذاتی هم تعش اون خوب بود اصل اول اشکال در اونجا می کسانی که حجیت ذاتی برای قطعقان خب حرفشون همینه دیگه خلاصه هست اونی که ذاتا حجت قطعه بقیه قاره مقامش میشه انفققل قط اون خلاصه حرفشون. ایشون میگه که و ذلكکه حتیق کند تعیف منحصره تریق منحصر یعنی طریق ذاتی منحصره. بقیه مابل ارزه کلو مابل ارز لابدن انتقالا ما به ذات حرف اون اینه اونی که به زاد طریق قطعه. اما خبر به ذات نیست به لابدن ارزه لابدن انتقالا ما به که به قطعه باشه وقت این معناش اینه که تا وقتی طریقی که منحصر از در ذاتیت به بقیه قائم مقامش میشه و یکون الى عمل و به انایت تنزیل و قیام مقامهم. تنزیل به این معنا یعنی در وقتی که غص نبود مرونای مرونای نیست وقتی که غص نبود خبر واحد به منزله قطعه و این قلت ان عمل القلاب الطرق لیس من باب انها من منز نزله تن مقام العلم بل وفرض عدم وجود العلم فی العالم عالم کان و عاملین بها من غیر صفات اله جعل و تنزیل اصلا خب اون حرفشونه همینه که چون اصل اولی در حجیت ذاتی منتقی منحصر در قطعه بقیه چون ذاتی نیستن جل میخوا این جل رو تفسیر کرن به تنظیر یعنی گفتن که قطعه کاشف تامه خوب دقیق کنیم اگر قطع نبود اونی که کاشف تام ذاتن فقط قطعه اونی که ذاتن بقیه چون ناقصن تطمیم میشه این تطمیم روشن تنظیر من بیشونه فما ترافی کلمات من القول به انشاره جعل المعدا منزلت الواقع این جعل معدا ایشون مخواد بگن که از این طرق اغلائیه مسئله جعل در نمیاد جعل معدا خب این بحثیست که آیا خوبی هم اشکال کردن ای اختلاس نداره از ادله و حجیت خبر واحد جعل معدا در نمیاد مثلا زراره با خدمت امام بودم امام فرمان لحم و حرام دقت کنیم؟ ما که کلام زراره میشنیم طبق کلام زراره که لحم و حرام نمیش خب این طریق رس به کلام نمیش ایشون میخوانیم بفرمان؟ می جعل معده معمانه نداره. و من این توضیح ها کردم که کرادن این متاسفانه یک جور بدی نقل شده عده تصور کردن مسلک جعل معده که مسلک آمه هست بلمای اهل این در مطلق امارات میاد مثل خبر واحد مثلا مثلا در خبر واحد جعل معده میاد خب خبر واحد میاد دیگه آبا میشه ما بساده بودم فرماندن لحم عدم هرام اصلا اهل سنت هم این کلامو بی این مبتزلی رو که نمیان اشتباه شده اونی رو که اهل سنت قائلن که جعل معده در خصوص فتوای مشتهده اونا چون عقیدهشون شون اینه خوده یه کمی کلمات درست رفت نشده عقیدهشون اینه که در عده از موارد شاره چه وسیله قرآن چه وسیله سنت احکام رو بیان کرده و موارد بسیار زیادی حکم بیان نشده خوب دقت کنیم اون وقت اینا میان میگن از اون مواردی که بیان شده حکم این موارد مثل در بیاریم اگر این حکم رو در که این اشتها اینه معناش هست مثلا اشتها و گای اشتحاد بهش می گفتن گای قیاس می گفتن گای رعی می گای تحریم میگفتند، گفتن گای استنبات می مختلفی داشتن برای اشتحاد برایش این بود اگر ما چیزی در آوردیم، طبق همین نظر مشهل حکم واقعی می چیه و من عرض کردم این تصور نکنید یک مطلب در احکام شما دیگه خاص داریم اما این مطلب عجیبی نیست که طبق نظر من واقع باشه باشه ما معامله واقع بکنیم ما باشه معامله واقع کن نظر شبیهش رو من کران عرض کردم مثل قیمت گذاری منزل یعنی یه منزل رو یکی یک میلیون قیمت میزه یکی یک میلیونی یکی دو میلیون الان برای علما توی مکاسه ملاحظه بفرمایید نمیگن میگن اینجا تعارض کرده با ترجیح بنیم میگن نه این یک میلیونم درسته 1.5 هم درسته 2 هم, هم درسته همه درست. و لذا میگن شما بیا اینا رو با هم دیگه جمع بکنید تقسیم بکنید مثلا یک و 1 این میشه 2 نیم با دو میشه 4 و نیم و نیم تقسیم بر بکن میشه یک کنیم پس قیمتشو این کی میگه همه رو بگیر یعنی همه رو واقع فرض کرده فرض کرده با این مرادش رو من اینا چی میخوان بگن میخوان بگن خانه یک چیزی نیست که یک قیمت واقعی داشته باشه خوب دقت بکنید خانه این به رقبات و به رقبت های عوض میشه وقتی این گه قیمت این تشتیز رقبت و این داده اون میگه یک میگه اینه لذا خود ما هم عقیدمونی فتور فقام هم اینه. که در صورت اختلاف قیمت ها رو جمع بکنن معادل بگیرن این گرفتن معادل، این معامله واقع با اونها شبیه این رو هم توی احکام سنیا گفتن شبیه این پس مراد ایشون میگه طرق اوغلائیه خب دقت درسته طریق هست فتواهای مشهد طریق هست لکن طریقی است که مستق... اسمشو مستقیم و غیر مستقیم اصطلاح ما ترجمه اصطلاح بگذریم مستقیم نیست طریقی است که توش رأی عنصر رأی دخالت میکنه نظر دخالت میکنه این یک طریق مستقیم نیست مثلا شما میگه پیش دکتر نغزتون تونده خب این طریق مستقیمه دست می شما دست بدن نبضتون رو میفرمه اون کی دست بذاره میفرمه نبضتون نمیفهمی مشکل نداره که اون که طریق غیر مستقیم چیه یه دکتر میگه شما مثلا ناراحتی کبد دارید یکی میگه ناراحتی قلب دارید یکی میگه ناراحتی مثلا روزه دارید یکی میگه خونتون تافون پیدا کرده این دومیش محد کلامه در دومیش محله کلامه این اصطلاحا ما در اصول روش پس شما یک حس داریم خب این ندوش تون این حسی این همه میفهمه این تخصص نمیخواد این خبرهیت نمیخواد همه افراد میفهمن اینی که میگن قول اهل خبره حجت مراد از اهل خبره شد یعنی اون کسی که از این حسی یک مطلب دیگه رو است، استنتاج میکنه لکی در مثل ت وقتی یکی گفت خونت تعفن پیدا کرد، یکی گفت معده خرابه، یکی گفت خرابه در مورد طب مگر احتمال باشه یکیش در یعنی هر سه علت معلول یک علت دیگه واشن یا یکیش در طول دیگری باشه چون طب یک امر واقعی است یا میگن یکیشون اشتباه کرده یا میگن مثلا خون تعفن پیدا کرد منشأش تعفن توی معده بوده به روده رسیده به روده رسیده به خون خون تعفن دقت می‌کنه اگر قابل طولیت باشه جمع میکنن نباشه میگه یکی از این دکترا اشتباه کرده. خب بعضی که مربوط به خود مشو خود اما که اصلا خب ایشون میخواد بفهمانن که اساس اینو نیست. ایشون میگه کلمات المشایخ ایشون میگه ان عمل الاغلا به طرق ليس بمن باو عنه مناظره و مقام العلم بل لو فرضوا عدم وجود العلم في العالم كان و عاملین بها من غیر التفات الى جعل و تنزيل اصلا میگه جعل نیست جعل در اینجا یعنی سیره عملیشونه این که میگه جعل چون همین که میان باش معامله میکنه معامله علم میشه جعل چیزی نمیخواد خاصه چیزی نمیخواد فما ترافی کلمات مشایخ من القول بان شار جعل المعدا منزلت واقعه این جله موعظه رو مشایخ ما قائل نیستن اینکه قائلن مشایخ ما در تفسیر اماره که دیروز من توضیح دادم گفتن یکی از مسائل جله رو یکی از مسائل نه اینکه قائلن خب اونایی که حکم ظاهری میگن اونایی که نمیگن حکم ظاهری ناینی که نمیگه عارفه این همشون تکیه کش میگن نه نمیگن ظاهر و حکم میگن از حال ما تاثیر توی از خواب ما نداریم ما. میگن در و این ظاهری به معنی که ظاهر و حکم ولی ظاهر میگن حکم نیست اصلا دارای ملاکات و حکم نیست اینشالله میاد در محل خودش این تنزیل معدا بیشتر مسلک آمه است اونم در کجا گفتن در مثل حدس گفتن یعنی در اشتهاد یشو میگه تورو رو اوغلای و اوغلای مثل بیینه مثل خبر واحد نو راست در بیینه کسی جعل معدا نگفته مثلا کسی توی بیینه مثلا اگه بیینه قائم شد که فرض کن ولانی مرده بعد از سفر برگشتین آها تو مردهی. بیانه آمد مرده بیینه آقا گومرده کسی قائل نیست مطلب که این اشتباهی شده در بهسا تورو مثل بیینه البته نه ممکن قاضی همس بوده گفته بله دی داخل کسی داره تشییع میکنه تو تابوت زنده مامان ما من زنده از تشییع میکنه که دفنشو این متهیر شده از قاضی پرسید بله این بیانه آمد که مورد سفر تابوت بوده بیانه آمد که مرده. بعد بعدا مرشدی قاضی زنشو گفته انبالشم گرفته این حالا خودش برگشتی میمونه زنده قاضی میگه میشم خلاف بیانه رو گفت خب برای گفتو ورده گفتین برای دفنش میکنن این طب خب این برای شوخی نمره میشه این هیچ فقیه و غیر فقیه و متفکری از اهل سنت قائل نشده در یک طرقه واقعا مثل بیان قاره جعل و بشه کسی قائل در جعل و ادعا مثل بیانه؟ بیانه آمد گفت مثلا در حرم مثلا بسته اصلاً یا در حرم دزدیان بعد از در حرم خودشه بگیم نه پس در حرم به دزدی ببریم چون گفتن دزدیان که هیچ به لحاظ که این مطلب دفع کشف خلانه جعل نیست که تو تاریخ میدونن جعل <تصفيق> ای بابا این اصلا جعل جعلن که اگر من بر طریقی <تصفيق> من طریقین ایشون میگه فما ترافی کلمات الوم من جعل المؤدا منزله این جعل المؤدا حساب داره ایشون میگه اینا همه طرق اوغلایین هم درسته بحث سر اینه که اینها طرق اوغلای هستن فتوا طریق اوغلای است قول قاضی طریق اوغلای است لکن طریق صرف نیست توش عنصر هستم هست توش نکته دیگری هم هست در اون جایی که طریق صرفه کسی که جهل معددانه میگه فرقی صرفه که طریقه دیگه جهل معددانیست که او تمم کشفه این مبنای ناینی جعل معددانه نه خب مرموم ناینی هم که تصمیم کشف میگه به این معنا ایشون من توضیح داده بگیره میخوام او جعل زن علمن فی مقام شارعیه یا زن و منزل علم, منزل علم. این جعل زن علمن به همون معنا او اعطاء مقام طریقیه یا اینکه تریقیت طریقیت به عنوانه نداریم یعنی طریقیت او امضا شده باشه و غیرها لا تخلو عن مسامحته بل فإنها أشبه شيء بالخطابه این مثل خطابات در سنات 5 سنه شده فتلخص ان لا به بالامارات اند فقد العلم تریقی لیس ایلا لکونها اهدل افراد لاتی جت وصل بها الا اهراز الواقع من دون آن یکونه نا بن آفر اند شی این قائم من مقام هم و در چه قائم مقامش نیست فر اندیز وقتی فرد علم فرز کدین یعنی قائم مقام دیگه اصلا خود مردم آشیانی در شهر بازش قامت الامارات یعنی گفته انت فرد علم قام مورد اینه از سرگل ما نداره چرا؟ کاشفیت هم داره کاشفیت هم داره و هر حال ایشان معلوم میشه که اعتراضی بر مطلب دارن که اینجا مطالبی که در اینجا گفته شده خیلی چین درست و واقعی نیست و این طرق است و در این طرق اقلائی مسئله تطفیم کَش از طرف مرونائلی که تطفیم کش میگن دلیلش رو ذکر کردن ایشون میفرن آیه موارث روایت مبارکه لیس لاحد من موالینا میگن الغاء شک مساوی با تطفیم کَش هست چون این نه اینکه واقعا کش بشه با شما اشکال میکنین که مثلا این روایت مفادش این نیست این روایت سند ضعیفه ای آخر دیگه است یا اصلا تطفیم کَش نداره اگه این رو آمده ما این یه نوع مجاز مثلا حالا اون بخش دیگریه و اما اینکه ایشون میگه هیچ کدوم از اینا عین و نیست مرادشون از قیام مقامه رو به این معناس حالا این راجع به این مطلب ایشان و اما توضیح نهایی مطلب چون ما این چند روزیه از اول بحث قطع وارد شدیم تا اینجا ما برگردیم خلاصه ای از بحث رو arz بکنیم که دیگه این بحث هم امروز ان تمام شد, شد به اینکه ببینید در مسائل علمی چه اصول چه همیشه اون نکات فنی و زرافت های فنی رو حفظ بکنید در مبحث حجیت قط که اینجا مطرح کردن از زمان شیخ قدس الله نفسه که این بحث آمد عنوان حجیت قط آمد و اون عنوان حجیت قط هم واضح نشد دقیقا در عبارت شیخ چیه چون اون لا اشکال فی وجوب متابعت قط ایشان این. و لزوم لعمل علا طبقه و رضای یک احتمال اینه که مراد از حجیت این عمل علا طبقه القره. حجیت این عمل اینه یه تحلیله شما وقتی قرد پیزان میکنیم باید طبقه قرد این تون عمل بکنیم سآل مطلب حجیت اینه کل مایجه ولعمل علا طبقه اصلا اعباردشه خیلی واضح نیست اونقدر وضوح تمام نداره که مراد جدیشان چیه اگر حجیت رو شما خود دقت کنید مبانی رو حفظ کنید اگر حجیت رو وانی لزوم و عمل ببینید خب این در قطع هست در امارات هست در اصول محرزه هست در اصول غیر محرزه هست تو شما در اصول غیر محرزه عمل می خب پس تو احتیاط شما اگر زاویه بحث و عمل دیدین خب این که منحه عرض میکنم دقت بشه شیخ این مطلب رو مطرح فرمودن لعن طریقیته او ذاتیه بعد فرمودن اگر ما صدر عبارت شیخ رو این جور معنا بکنیم حالا فرض کنیم بقول مرو مرو شیخ هم نباشه این خودش یک مبنای اصولی است اصلا شما میگید بنظر ما حجت یعنی مایه جور عمله عمل علی شما سوال مطلب اصلی مراد ما از حجیت و تنجج مایج بول عمله علی طبقه مطلبهم در همینطوره، امارات همینطوره، اصول محرزه مثل استثاب هم همینطوره، اصول غیر محرزه مثل برایت و اشتغال همینطوره. و لذا ما احتمال میدیم که در نسخه اصلی مردم شیخ در رساله اینطور بوده و علامت قطع طریقی انتقوم امارات ولی اصول مقامه بود خوب دقت بکنیم؟ شیخ ارز قبل از وفاتشون چه ها در سی سال سی و سال قبل از وفاتشون چند سال مثلا سال 25 سال قبل از وفاتشون سی, و... سال, بیس سال, بیس سال, از وفاتشون. سی سال نه بیس بیس سال قبل از وفاتشون این کتاب نوشتن سال رو احتمالا در اول ذهنیت مواردشون این بود من چون در ذهنیشون زه... که قرار بگیرم شاگردیشون هم آشتیانی همین معنا رو میفهمه این اول بعد شیخ میاد کلمه بعض رو اضافه میکنه بعض اصول، ولی اول اصول بود اگر شما ببینید این خلاصه بحثه که خیلی دقیق و لطی شما نکته هجیت رو چی ببینید؟ این باید فکر بکنید خود سوش باید فکر بکنید هجیت یعنی مایج بول عمل و به اگر هجیت از زاویه عمل نگاه کردید قطع و امارات و اصول محرزه و غیر محرزه همه علاحت اصلاه هیچ فرد ببینید فقط فرقش طولیته اول قطع اگر نبود امارات اگر نبود اصول محرزه اگر نبود اصول غیر محرزه همه حجت هم. اون ترتیبی که داره اینه اول قطعه چون زارتیز بقول بعد امارات، بعد اصول محرزه چرا؟ چون آمد زاویه بحث اینجور نگاه کرد حجت یعنی مایجه بول عملو به این اول ره. حتی اصول غیر موغزه همین حکم دلن هیچ فرقی میکنه ولی زمان از که شیخ در اول ال اصول نمیشه قامت امارات و اصول این نکته فنی روشن شد البته من عرض کردم قبل از این بحث خوب دقت بکنید اونی که در کلمات مثلا استاد ایشون صاحب بود ایشون نوشته ان ان المشتهد اضافه حسن الادله و حصل له اليقین به حکم یجب علیه العمل به ببینید عبارت مفاتیح چی بود مشتهد و فحص از ادله آخرش هم گفته بذال که ان الغلال لا که این دیگه احتیاج به حجیت داشته باشه عبارت مفاتیح بشتهد بود فحص بود نقطه اوغلایی بود در عبارت شیخ عوض شد علم ان المكلف شامل و مشترد و غیر بوشته اذا تفته تو شده شده فحسن العدله <تصفيق> اون چیزی که بعد در کلمات اصحاب ما متاسفانه عبارات شیخ بود نه اون عبارت قبلی رو ملاحظه اصلا چیز دیگری بود پس برا برابر این. این من خلاصه بحثی میخوام جمع, جمع بکنم که کل بحث جمع بشه در این شاء در امروز پس بحث اول ظاهر خود من واقعا نساد به شیخ نمیتونید ظاهر عبارت شیخ احتمالاً حجیت یعنی لزوم العمل احتمالاً عرض میکردم نه اینه اسکل عبارات شیخ اینه لا اشکال فی لزوم متابعت القدر و لزوم العمل الا طبقه حالا این مطابقت رو ایشون لزوم العمل گرفتی اسم چون حجیت خب میگن این اثرش شما توجیه شما عبارات بالاترینه اهل لند طریقیت و ذاتیت و ایشون ایشون بعد از شیخ مثل مرحوم ناینی حجیت رو از راه کشف بررسی کردن دروشن شد زاویه بحث عوض شد شاید هم همین کار شدید شاید هم شاید نظر شیخ به همین بوده اول عبارت شیخ لاری بفیل لزوم حجوب متع... متابعت قضل و لزوم عملاته پس از اینجا زاویه بحث عوض شد در مثل ناینی اینا آمدن حجیت و معنی کاشفیت گرفتن حوض شده اون بحث لزوم بول اول یک چیزه کاشفیت چیزی دیگریه حجیت یعنی کاشف دقیقه اون وقت آمدن گفتن قد طریقیتش ذاتیست نتیجه کاشفیت داشت اون نتیجه حجیتش ذاتیست اون عنوان حجیت ذاتی را از اینجا در آورده چون طریقیت و ذاتی ذاتیست این روشنشون سبه کار چیه؟ اونا رو کلمه کاشف رفتن اما در مثل امارا اون طریقیت و کاشفیت هست خود لقد کنید؟ در امارات کاشفیت هست اما این کاشفیت ذاتی تام نیست ذاتی نید، طریقیت ذاتی نیست این کاشفیت ناقصه اما کاشفیت هست از اون وقت در ذهن اونها حجیت اینی کاشفیت حجیت این کاشف لذا تمام موارد حجت و امارات و طرق رو کاشف معنا کردن مثلا زهورات رو گفتن حجت چون کاشف از مراده قول فقیه حجت چون کاشف از حقون شرعیه خبر واحد حجت چون طریق است به کلام امام اجماع حجت چون احراز میتونیم که قول امام دقت بکن بگنه حجت چون طریق است برای واقع قول اهل خبره حجت چون طریق است برای یک امر حسی ببینید تمام این امارات رو حساب بکنید رد پس زاویه بحث چی شد حجیت یعنی کاشفیت حجیت یعنی کاشفیت این زاویه روشه شد توی قد این این که ایشون اشکال فرمودن این باید توضیح داده می‌شد توی قد اون طریقیت ذاتی بود پس کجیت چی شد ذاتی شد اخ از اونجا این لطافت مبانی مرحوم ناینی اینه یعنی من همیشه از میگم در اصول انسان باید منسجم نه اصول در کل فلسفه معنویات رو یه تفکر منسجمه که یک یک مکتب به ارائه بده یک م... تفکر منسجم در این تفکر منسجم چون راه روی کاشه راه روی کاشه. یک جا گفت کاشف ذاتی است و اگه ذاتی شد کجا ذاتی است یک جا گفت کاشف ناقصه پس حجتش ناقصه رفتم کاشف بیه. و وقتی یه جایی که اصلا کاشف نبود مثل اصول غیر موهزه گفت اصلا حجیت سرد مقامونه میشه چون توش کاشف نیست اصول غیر موهزه این اگر اصول غیر موهزه باشه یعنی اگر حجیت و زاویه عمل نگاه بکنید تو اصول غیر موهزه هست اینی که مرموم آشتیانی شاگرد شیخ میفهماید که حقا با همون نسخه است که اصول باشه نه بعضی اصول چون اشون از راه عمل نگاه کرده روشان این ریزه کاریان شما هم میتونید قشنگ نتیجه گیری بکنید مرموم نایمی و این مقتر چون حجیت رو از راه کشف حساب کرده قد شد حج... کاشف ذاتی طریق ذاتی هم ذاتی امارات شد کاشف ناقص خوب دقت کنید میگه اگر جعل حجیت کرد یعنی این کاشف ناقص تام تکمیم کاش کاشف ناقص تام دقت کنم لذا آمد در بحث اماراتم هم کش مطرح کرد چون زاوی حجیت در ذهن او چی بود کاشفیت بود منشأ جعل حجیت، منشأ حجیت در سیره و بغلایی در این جور امور کشف و نه، کشف. کشف تام، حجت تام، کشف ناقص، حجت ناقص. کشف اصل نیست، حجت اصل نیست. مثل اصول غیر مورزه. منکرام تو اصول مورزه مثل استصحاب. من اصلا من که ملخص دارم می‌گم، می‌خوام واردون بحثا چون شد. متعرضه شدید، یک ایده استصحاب رو اماره میزنم خب اینا شو کاشف، کاشف ناقص یک ادهه مثل آقای خوبی اماره اما همه آثار امار ردی فرق با اماره داره خب اینم تقریبا شبیه اونه این بالا باید معنی. یک ادهه اصل عملی صرف میدونن لاکه محرز میدونن یک ادهه اصل عملی مثل غیر محرز میدونن لزوم عمل این اقبالی که در اونجا هست اونایی که اصل عملی محرز میدونن تفسیرشون هم مختلفه مرحوم اینا تفسیرش اینه. اگر اصل عملی غیر م... اگر اصل عملی مهرز شد کاشف نیست اما منکشف هست فرقش اینه کاشف نیست مثلا شما یکی از این این ملک منه این کاشفه یه دفعه این ملکه cane. کاشف ندارید اما منکشفش هست این اسمش استصحاب چون توش منکشفم هست ایشون میگه همین مقدار کافیه برای حجت بودن پس در حجیت یا کشف یا امکشاف خلاصه است. اینه که استثمار قاید مقام علم میشه. استثمار قاید مقام امارات میشه. در اینها هم یا کاشف مثل قط و زن، زن معتبر یا امکشافه مثل اصل محرز. این خلاصه نظر مرهوم نایمی که آیخوی هم همین نظره داره. و اینکه ایشون اشکال میکنه که تطمیم کشت و آقلایی نیست خب نه. ایشان زاویهی بحث رو اینطور دیده و بلا اشکال در تمام این موارد امارات یه مقدار از کاشف هست تطمیم این موارد چرا؟ چیز این ناقص میبینه میگه تمام ببین برای خب بعد هم ناقص میبینه میگه نه تو تمام ببین تقریباً ناقصه تعبدن تعبدن تعبد یعنی ایشو... دو تا طبیعیت رو درون هستند مثلا ایشان ظاهرش اینه بله من این طبیعیت ناقصه امضا اجازه نمیفهمه اما تو همه رو ببین. ببین. ببین. ببینید اجازه ببینید یک دفعه بحث عقلاییست ممکن است این اشارات شما پیش بیاد ایشون بیشتر نظرش به تعبد شرعیه خب عقلا اگر نبینن اما تعبد شرعی میتونه تعبد بکنه نه. آه احسن اون بحث است یه بحثی نیست که اگه بخواد تعبدن بشه باید تعبد برگرده به همون فهم اغلایی اون بحث است ایشون میگه وقتی شاره میگه لیس لعهدم موال از تشکیک الغا عشق کرده الغا عشق کرده الغا عشق کرده, الغایش کرده. الغایش کرده. تا گشت با پس تا اینجور دو سا مبنا روشن شد این خیلی ظریفه یعنی تمام این نکات و بحث فلسفه و اصول که اصلا انصافا به این دقیقاً در کلمات قد... قدماهای اصول اهل سنت بحثی خاصی و جبه علم داره این قسمت بحثی ندارن انصافا پس ما بیایم ببینیم اولا اون مبنای حجیت در کجاست هر جایی که اجوال عمل و به یک نتیجه میده دو حجت یعنی کشف یعنی کاشف انکشاف این همون رازیه که ناین و استاد آقای خوبی رفته. البته این هست جاهایی که اغلایی باشه با تفسیر اغلایی داد جاهایی که تعبدی باشه به لسان تعبد ایشون میگه به لسان تعبدی آیخوی مبنیش این که حجت خبر سقه اغلاییست شاره انزا کرده دقت میکنه. اما رو این مسئله که شاره تعبد کرده لیس لعه در از تشکیت شما حق شک ندارید تا شک رو برداشت میشه تا کاش بتا چون خودش فی نفسه که کاش بود میشه تا تجدید الغاء شک میکنه الغاء به غین نه با غاف. شما در روایت الغاء شک نکنید اینو مشکل ایجاد نکنید در روایتی که نه بابا یکی الغاء با, با غین شما با قاف گرفتید الغاء شک یعنی ازاله شک اعدام شما شک و الغاء باقاف گرفت. <تصفيق> من دارم واقع با باخی باقاف ندیدم. الغاء ازاله شک. ليس الاحد من مبانی التشقیق یعنی ازاله شک یعنی اعدام شک. شک رو برمی‌داره. من داشتن الغاء احری شما نمیگویند که درست کنه. فرض خودمون بگیریم. شک رو میگرده خب شما شک رو برداشته میشه کاش تا خبر واحد 70 درصد اطمینان آورد یعنی زن اولو سی درصد شک میگه بردار. خب سی بردار میشه شک که بردا. خب 30 درصد شکش برداشت میشه 100 درصد. میگه شک نداره. اما دیگه درس خود نمیده بردا. نه شاره تعبدن برمی‌داره. پس دیگه برداشت. رو درست خب حالا یه راه دیگه است. اون راه دیگه. نه. بحث سر فهم از نسل این مبنای دوم شد. روشن شد آقا؟ چه ما دیگه. مبنای سوه اون راهی بود که ما از کردیم خدمت آیوم و خلاصی اون مبنا که اصولاً خجیت یک پدیده اجتماعی فردی نیست بحث زاویه عمل رو نباید مطرح کرد یه پدیده اجتماعی طبیعتشون اینطوره، از یک جامعه به یک جامعه فرد میکنه از یک زمان به یک زمان فرد میکنه این همونطور که که کن در عبارات مرحوم سید محمد فئنل اوغلا اینی که این که ایشون روشان عقلی عقلی نیست عقل فقط همین مینه که رفت یک صفتیه که واقعه را انسان مقابل خودش می‌بینه این عقلیشه اما حجیت این نیست حجیت عبارات هست یک فهم اوغلایی است که در باب تنجذ قوانین به رو میاره بچه. چون خود قانون هم الان از من. خود قانون هم یک امر اجتماعیه. انسان که در کوزه دیگه اون قانون نداریه. اصلا بدون وجود قانون تصویر و حجیت نمیشه. قانون مدنیه. قانون الهی هم همینطوره، فرمان اون وظیفه انسان تجاه خدا و بعث انبیا نکته دیگریه. رابطه بین حجی... حجیت مصطلح ما نداره. حجیت. بله، حجیت میاد، اونم تفسیر به همین تفسیر عقلایی میشه. پس بنابر این خوب دقت بکن، حجیت یک پدیده اجتماعیه. چون یک پدیده اجتماعی البته مناطاتی داره اینطور نیست که احکام اقلایی بیمنات بی باشه این مناتش به نظر ما بیشتر لحاظ نه بیشتر اون نکته اساسی زاویه بحث لحاظ حال جامعه است حالا یا تصیل امر بر مردم یا پیشرفت اجتماعی یا حفظ وقت اجتماعی جهات مختلفی است که برمیگرده به خود جامعه بله زیربنا و زمینه حجیت کشفه این قبوله اما علت تامه نیست اختلاف ما با اینجا ساخت این نیست که کاشف علت تامه باشه یدور و مداره بود کاشف و کشف چه تام باشه چه ناقص باشه اون زمینه اساسی رو برای حجیت درست میکنه خوب تعمل بکنید. وقتی کاشف تام بود چون از او کشف بالاتر نیست اگر بخواد به شما بگه آقا عمل نکن برو دنبال واقعه جامعه به هم میخوره اختلال نظام لازم میان تعطیل زندگی میشه. این مطلب درست و لذا دقت بکنید حجیت در مواردی که جنبه کاشفیت داره به نکته کاشفیت تنها نیست کاشفیت به زمیمه یک نکته دیگر که خارج از کشفه این معیار برای حجیت میشه مثلا در باب قضاوت فقط قول قاضی به عنوان که قاضی کاشف اهل خبره از اهل نظرین هست درستی مطالبه اما اینکه میاد میگه قول قاضی و حجت اونو در نظر میگیره به زمیمه این اینکه باید تو جامعه خصومت و دعوا نباشه اگر در جامعه خصومت باشه جامعه رشد نمیکنه و نزا میگه شما باید اگر قاضی چیزی گفت قبول بکنی ولی اون حسوغ نداری به حرفش اطمینان نداری علم اون دنبال علم نیست اون دنبال اینه که باید در جامعه خصومت نباشه مثلا خبر واحد رو حجت میکنه برای تسهیل عمل اگه خبر واهد نبود این همه همه هم باید بلند میشدن از شهر خودشون خراسان و غیر خراسان مییاستن تا مدینه از امام صادق رحامشون سوال بکنند. وضع جامعه به هم میخوره وضع زندگی به هم میخوره پس اگر خبر واحد رو چون یکی از ادله خبر واحد تعبدان هم همینه که پیغمبر اکرم و ائمه علیهم الصلوات و خلفا و دیگران احکامی رو که به کردن توسط همین رباط مردم میرسید راست است یعنی یک دلیل سری عملی به وجود خبر واحد و این دلیل تام منصفا این دلیل یک دلیل قویه لوکی مشکلش اینه که این دلیل لبیه قادر متعقل داره. اصل این دلیل تام انصاب قضیه این مطلب هست اما ان من کلام قدر متعیقمشو وارد حساب کرد به الله این مطلب تامه می در این که اعتماد میکردم بر روا و این یک راه اوغلایس قطعاً اینطوره برای تسهیل امر بین این امر اکتفا میکنه و کرارن ارث هم چنین مسئله ای است بر میاد به تمدن و اون مرحله ای که فرهنگ جامعه است ممکن در یک جامعه پیشوب اینقدر میشه که دیگه به خبر پیدا نکنند توی اخصانه ها تو کل کنه زمین با یک دبنه کامپیوتر بزن از مجلس و از قوائد قوائدی که جرد میشه خبردار بشن لذا میگیم حجیه دیگه انا با اغلائی نه از یک جامعه به جامعه از فرهنگ به فرهنگ از تمدن به تمدن این فرق میکنه پس بنابراین به ذهن ما کاشفیت تنها نیست یک نکته خارجی هست حتی در قطعه حجیت دارمدار اون نقطه است. یعنی به عبارت اون اخراب حجیت طریقیت صرف نیست. یک نقطه میخواد. یک نقطه موضوعی میخواد. مثلا تسهیل و حفظ نظام اختلال نظام لازم نیاد. خصومت نشه. راحتی مؤمنی. وحدت کلمه مؤمنی. مثلا میگه بعد از من به این آقا به خصوص مراجعه کنیم. برای وحدت کلمه جهات دیگری هست که حجیت درست میکنه. آقاییان اون طریقیت و کاشفیت و علت تامه گرفتن ما زمینه گرفتیم کشف <میقش> هست اما نکات دیگری توش هست این یک مکلا در عده از موردن حجت و غلائی نیست که همش باش مثل بیانه بیانه اگر ثابت بشه حجت شرعیه وقलम به نظر ما دنبال وصوله. وصول داره این مثلا پاک بله. نه دو نفر عادل گفتن. خب گاهی وقات گفته دو, دو نفر عادلن برای انسان وصول بدنمیشه. تبع قواعد دو قلایی حجیت نداره. اما اینجا بیینه حجته شرعی اومده. این دو نکته نکته سوم گاهی حجیت یک نکات فردی داره. گاهی یک نکات اجتماعی داره. خوب دقت بکنید. اون که میگن مثلا حجیت امارات با فقد علمه این در نکات فردیشه حالا من براتون این رو یک توضیح میدم باز میکنم ببینید شما هر حکمی که میخواد برای شما حجت بشه دو مرحله داره یکی کبرا مثلا خمر نجسه یکی صغرا این مایع خارجی خمره خمر نجسه این مایع خارجی خمره خب شما باید به این دوتا علم پیدا کنید ما هم میگیم حجت تمام برشون تنجز تکیم تنجز اینه دیگه شما بدونی خمر نجسه دو بدونین با خمره این تنجزه تنجز مناش اینه مرحله تنجز که کردیم وصول اون کل لفت مناش اینه وقتی دقت بکنی یک مرحلش که خمر نجسه ارتباط با مقام شارع داره لذا ما ارز کردیم شارع میاد تو این مرحله تصرف میکنه میگه اگر تو فهمیدی خمر نجسه باید از یک طرومی که من وغلا قبول دارن و صحیح و درسته برید بگی من قطع پیدا کردم نه این صفت نفسانی تو تاثیر نداره غلط کردم میخود تایید کردم از چرای قطع... کلاف من خرم چه راهی غلطه کلا من اصلا خبر نجست خب چه غلطیه پس یک مرتبه برمیگرده به کبرا چون من عسكر در قوانین یک وظیفه شارع یک وظیفه مکلف جل و خیلی از مقامات جل وظیفه شاره انتصال وظیفه مکلف اما اینکه این مایه خمره یا خمره خوب دقت بکنید، این چون راوزه در با مقام امتصال اینجا عادتا مقنن دخالت نمی خوب دقیقه اینجا عادتا مقدم دخالت نمی کنه خوب اینجا عادتاً دخالت نمی یاد بگه قطعه تو متعارف بود یا نبود کار اصلا در این مقامی که برمی گرده شعن مقنن نیست بیاد همراه خوب دقیقه اما در مقامی که من علم پیدا کرد نماز جمعه واجبه از کجا این پیدا کردیم دیشب خواب دیدم من خب بخود خواب دیدم علم من به باطل من از راه قیاس علم پیدا کردم و خب بیخود علم پیدا کردم دقت بکنید ما آمدیم این حجیت رو چون به لحاظ امر خارجی گرفتیم نه به لحاظ تاریخی تفکیک قائل شدیم یک مرحله حجیت که به کبریات برگرده این رابطه با شاره پیدا میکنه یک مرتبه از حجیت که به صغریات برگرده این رابطه با شاره پیدا نمیکنه میگه من قطع دارم که این مایه خمره خوبیش تناوب بکنه حالا قتش درست هم. بله شاره در این مرحله هم میاد دخالت اگر قطعش خیلی غیر متعارف شد وسواسی شد میاد شاره دخالت میکنه اما عادتا دخالت نمیکنه چون نمیتونه شاره بیاره همراه هر مطلب در موضوع خارجی با زندگی بکنه دقت پس بنابر این این مطلب خوب دقت مثلا فرض پیش قاضی قاضی, قاضی گفت آقا این ابا مال فلانیه من میگم آقا قرض بره این حکم تو باطله او قرضشوش چرا چون معیار حجیه دیگه امر اجتماعیه قطعا اثر نداره قرض فلک این قاضی اشتباه کرده اون قرض بده کرده شي اثر نداره اما اگر من یقین دارم این طاهره بیینه آمد نجسه خوب ببینید شارع میگه تو به به اصطلاح به بیینه دیگه عمل نکن به قرض خودت یعنی اینجا قرض مقدمه چرا چون اینجا جامعه شخصیه در امر شخصی این تقسیمی که گفتن قد اول بعد, ب... بعد بیانه این درسته اما در امر اجتماعی چیزی وضع نیست و لذا عرض کردیم مثلا بعضی از اهل سنت گفتن اگر حاکم گفت فردا ماه رمضان نیست ماه شعبانه خودی این شخص ماه رو دیده نمیخواد اگه از با این بالاتر خودش به چیزی خودش ماه رو دیده ادعی از اهل سنت گفتن بله فردا روسیه بگیره آثار ماه ادعی گفتن نه چون اونم روز یک پدۀ اجتماعی حاکم گفت نیست نیست اما همونا باز ادعایشون توی عید فطر گفتن اگر ماه رو خودش دید معاذلک حاکم گفت فردا عید فطر نیست پس فردا ایشون باید به حکم حاکم پس فردا رو اید بگیره چرا چون فطر رو به خاطر نماز اید اجتماعی فرض کرده پس نکته فنی در اینجا اینه اون طولیه دیگه نویسن. اول این دوم اینی که ایشون میفرماید طولیت ندار راسته نکاتی که در حج... این روشن شده بحث یک ما در دنبال لزوم عملین نه دنبال طریقیت و کاشی بیار دنبال اون نکاتی هستیم که به خاطر اون حجی. حجیت شده اون نکاتی که جعل حجیت میکنه اینطور نیست که همیشه اندفقدر علم باشه گاهی با وجود علم هم باید میکنه یعنی اوقلا قبول دارن من علم دارم قاضی اشتباه. الان دیده شما دیده‌باشین گوی توی اصلا از ما کلی ویدیو از شما دیدی. توی بعضی مسابقات داور اشتباه می‌کنه، بعد بازخونه‌ای که می‌کنه، یقین پیدا می‌کنه اشتباه. لکن به خاطر اینکه داوری تو مسابقه اگر زیر بارش داده بشه، بگن تو باله هند نظام و بازی بعد می‌خواد، هیچ بازی دربیری بوده. با اشتباه داور قبول نیست. بگه خیلی فضیحت باشه، جاج دیگه ایلاش باشه، تبانی باشه این حرفا. با اشتباه داور، با اینکه بعد یقین پیدا می‌کنه اشتباه کرده، قبولش می‌کنه. چرا چون اونجا بودن پدیده رو فردی فرض نگردند مثلا علمای ما اتفاق دارن که اگر خودش ماهرودی ولو حاکم هم گفت سر علم خودش عمل بکن. چون پیش ما ما ظاهره اجتماعی نیست چون ما حکومت ندشیمش یه بگه ما برخوردمون با ما ظاهره فردی بوده خوب دقت کردین نه ظاهره اجتماعی لذا پیش ما علم مقدم است بر حکم حاکم دقت کردین پس اون معیارها روشن شد اولا حجیت تابع طریقیت نیست کش نیست میارش هست زمینش هست قبول داریم تابع نکته است. اگر تابع نکته شد باید اون نکات رو بسنجیم. میگه آقا من علم داشته باشیم نکته این هست که خصومت نباشه. نکته این هست که بازی ادامه پیدا بکنه تو علمم داشته باشیم فایده نداری. این کار رو بند نمیزنه اما اگر شما این داشی این نجسه بیینامد طارقه شما چون اینجا فرقیه بعدش هم مسئله بیینه شرعیه پس اون معادله ای رو که شما خیلی حساب بکنید اینه در این فرق. این تمام مباحث حجت از او در طارقه تو مرخص کردیم این قائم مقامم که اون گفتن این روشن شد این لفظ خیلی به جا نیست و دقیق نیست موزاافه این که از کردیم که مثلا در خبر واحد خب ما خبر واحد نمی نمیگیم نه شرعاً نه عقلاییه خبر سقه را حجت نمی‌دونید اون چیزی که حجت دیدین وصوله من اول بحث کلاران عرض کردم مراد ما در غتم در اینجا که میگیم حجتش مقبول اندر اوغلاس قطع تنها نیست قطع هست وصول هست اطمینان هم هست وضو هم هست وضوع رو استراحه گفتیم علم عرفی سفره گرفتیم ما شیخ دیگه راه قطع نوشتند وصول و اطمینان هم هست قطع هم هست و علم عرفی علم عرفی وضو و مفسر عرض کردیم اینی که ذاتی هم باشه ذاتی هم نیست در این هر شرطش در باب قوانین خوب دقت در باب قوانین شرطش این است که عقلایی باشه تازه اون قطعاً مطلقا نه بله این هست گفتیم نور درصد شروع طرق و باشه ده درصدش رو برای فرد باز میزن چون افوال فهم میکن دیگه نمیشه سد درصد رو اغلاقی. چون اغلا اختلاف دارن با هم اگر گفت من یقین دارم به این حکم نور درصدش باید مخدمات میشه بگه مناشع یقین رو بگه نور درصدش باید اغلایی باشه ده درصدش خسائص فردی خودشش باید نه من نبال نه معتقدم اون حفظ جامعه اختلاله ویلا ممکن بود دیگه شما وسوق هم داری علم هم داری حجزیز باید اینقدر بری سوال بکنی تا این واقع برسی ممکنه جامعه بر هم میخوری. رفع خسومت هم همینطور جامعه به هم میخوری. احکام فردید به مقام امتصال که بردگرشون شاره تصرف مگه که خیلی خراب بجازی بله اونجا قبول میکنی چون شارع دخالت نمیکنه. نه اینجا رو خوب دقت اینجا رو برای اینکه از شون شارع می‌بینیم مقنن می‌بینیم برابر احکام فردی یعنی شال معاملات احکام فردی هستند مخالف مثلا در حکده س و کام چیکار بگم مثلا احکام فردی می‌شین خلاصه چون وقتم گذشتید 8 کاش دیرو گذشتید خیلی باز می‌خوام این خلاصه بحث در اینجا پس بنابر این البته این بحث که این قائم مقام اونه تطمیم کشه راست اینا را ما قبولنه جعل معدل کسی علمای ما قائل نیستن و بعدا با این بیان ما روشن شد ما یک از امارات در فقه در احکام داریم که عبادت از خبر وارد هست اجبار رو مسلک شیعه هست مسئله شهره با... چند جوری شهره اون مسئله شیعه هست مسئله قول اهل خبره در کل هست اه... اهل خبره در اینجا نداریم ما در چی خطوای فقید اندلکل الا شوازی اشیاء که تقلید جایز نیست کسی با خودش برواد. از واز اخباریات نخواید از کسی طرح نباید بکنه خودش به اخبار مراجعه کنه انتظارو مثلا تقلید کنه این ده این قول ازش زکر نداره تقلید هست مسئله حجت ظواهر هست تمام اینها در احکام جاری میشن الا که نکات خاصی خودش دارن اما در موضوعات بیینه هست به اصلاح قول اهل خبره مثل طبیب هست به اصطلاح مسئله قاضی هست قول وکیل هست قول والی و استاندار و کسانی که منصوبن هست نمایندگی به اصلاح قول اینا هست لیکن این اقوال بیشتر جنبه به اصطلاح طریقیتشون محفوظه لیکن معذانه که نکات موضوعی دارن و باز هم نکاتی که درشون هست و هم دیگه یک مقداری فرق میکنن بعضی ازشون جنبه های شخصی هست انصافاً در مقابل علم نمیستن بعد اون جنبای اجتماعی دارن با علم شما به خلافم هم انجامش بدیم اصلا علم به خلاف دارن تأثیر نداره و این سر اینه که در ادله امارات هم نمیده این کنت لا تعلم حتی تعلم لا حتی تعلم تو اصول آمده کل این ام نظریب حتی تعلم آمده اما قول و قاضی حجتون حتی تعلم ما نعملیم. اصلا در امارات سر این که حتی تعلم طولسان عدلش نیامده اینه چون اینا مختلف هم بعض یا رو فهم مقلایی جای حتی تععل نداره هستند و این در علمنها مقدمه مثل موضوعات فردی که مقام امتصال برگرده اونم درست احتیاج ببریم نداره. این خلاصه بحثی که در اینجا هست پس خلاصش این شد این قائم مقامی که اینا مطرح کرده این درقیقت اینطوره بعضی از امارات ن حجیتشون ثابت نیست اصلا نکته‌ای نداره. و این نکته ای هم عرض بکنیم اونجایی هم که شرعی هست قبول این که شارع مسلک دیگری در جعل حجیت در و در اعتبار داشته باشه غیر از ما علیه و اون هم بعیده این دیگه توضیحش جلسه دیگه امروز این بحث ما تمام کردیم اون وقت آخرین اون نکته خیلی گذاشت دیگه فردا آخرین نکشه عرض میکنه. در قطع موضوعیش هم فردا که این بحث تمام تمام بشه چون بریم تو بحث بعدی ان شاء الله و محمد و اد چه جامع مان ای بر هست